هفتم قانون 820 را به کار بگیرید. قانون 820 یا اصل پارتو یکی از مهمترین و قدرتمندترین اصول مدیریت زمانه. این قانون رو اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو آورده که همه کارها رو به معدودهای اصلی و متعددهای فرعی تقسیم کرده. این قانون میگه که 20 درصد کارهایی که انجام میدید یا همون معدودهای اصلی حداقل 80 درصد ارزش تمام کارهایی که میکنید رو ایجاد میکنه. معنی دیگه این است اینه که 80 درصد کارایی که انجام میدید فقط 20 درصد ارزش کاراتون رو ایجاد میکنه. این قانون 80-20 در تمام جنبه های زندگی کاری و شخصی صادقه. در کار 80 درصد فروشتون از 20 درصد مشتریاتونه. 80 درصد سودتون از 20 درصد محصولاتتونه. 80 درصد فروشتون از 20 درصد فروشندگانتون میاد. 80 درصد درآمد، موفقیت و پیشرفتتون از 20 درصد فعالیت میاد. اگه ده کاری که در یک روز مشخص باید انجام بدید رو فهرست کنید، دو تا از این موارد با ارزشتر از مجموعه همه موارد دیگه میشن. توانایی شما در شناسایی و تمرکز روی 20 درصد برتر فعالیت‌ها بیشتر از همه عوامل دیگه تعیین کننده موفقیت و کارایی شماست. این هم یک ایده‌ای برای شما. با استفاده از قانون 80-20، تنبلی سازنده رو در پیش بگیرید. از اونجایی که نمیتونید همه کارها رو انجام بدید، باید در انجام بعضی از اونها تنبلی کنید. پس خودتون رو منذبت کنید که تنبلی رو در 80 درصد فعالیتهایی که ارزش کمتری برای زندگی و نتیجتون دارند انجام بدید. بیشتر اشخاص در کارهای با ارزششون تمبلی می ولی شما قرار نیست اینطور باشید شما باید خودتون رو تحت فشار بگذارید و در کارهای کم ارزش که انجام دادن یا ندادنشون نتیجه جزئی دارند به طور حساب شده و مداوم تنبلی کنید همیشه قبل از شروع به کار حتما بررسی کنید که کاری که انجام میدید جزو 20 درصد برتر تمام کارهایی که میتونید انجام بدید قرار داشته باشه در بقیه یه کارها تنبلی کنید